خب بسم الله الرحمن الرحیم کتاب العاریه کتاب العاریه اریه با ودیعه فرق میکنه ودیعه در دست شما امانت هست ولی حق استفاده و انتفاع نداره ولی اریه نه اریه رجوان میری میگه کارتو انجام بدی مثلا میری پیش همسایه آقا کلنگ تو بده ما چای میزنه آ رو بده یه لحظه این دیوار رو مثلا کار داریم فرغون رو مثلا بده این آرد رو میبریم تا فلان جا تراکتور تو بده اینو میبریم تا از این مه خب پس والعاریت معونتن معونتن ندب ایلیها المعیرو و ارفق به ها میگه آریه یک معونی هست، یک کمکی هست، یک جاست، همکاری هست. مستحب شده به اون مویر، اونی که آریا میده، مویر داریم و مستعیر، ونمیده. مستعیر اون میگند که آریه رو میگیره. مستحب هست، تشویق شده است. مندوب شده است به اون مؤیر اعاره دهنده و یک ارفاقی حسب به بمستعیر البته باز هم در منهجی آورده بود این حکمش مختلف با توجه به حالتا مثلا گاه موقع این آریه دادن میگه واجب میشه طرف داره غرق میشه میخواد از شما تنابی رو آریه بگیرن مثلا از چاهش بیارن مثل همون قبلیش. خب پس آریه و هی مردودتون این بقیت و این آریه بازگردنده میشه اگر باقی موند و مزمونتون این تلفت و مزمون هست یعنی طرف زامنش هست زمانت شده هست اگر تلف شد آریه تلفش کرد قیمت شو میده فرغونی رو تواه کرد یا فرغونی مثل اون بهش میده یا قیمتشو شو خب اینجا نیاز هست که نظریه باقیر رو کس در پاورقی آورده بخونیم میگه قال المالکیه و المستعیر لا يزمن الاریه الا بتعدل او تفریط او اهمال مالکیه و حنفیه میگند مستعیر زامنه آریا نیست اونی که آریا رو گرفتسه تحویلش گرفته مگر با تعدی کردن یا کوتاهی کردن یا سهلنگاری کردن اینو فقه علال مذاهب عربعه جزیری آورده کتاب خیلی قشنگی این کتاب خب بله ولیس له اعارتو مستعارهو و حق ندارد مستعیر اونیکی اعاره رو گرفته آریه دادن انترا که خودش آریه گرفته است و له اعارتو مستعاره و حق ندارد یا جائز نیست برای مستعیر اعاره دادن آنچه که خودش آریه گرفته است ولا اجارتهو و نمی تواند اون رو اجاره بده و این قدرت به مدتن لم یه تجاوزها اگر مشخص بشه مدتش آقا اینو تا فردا دست شما باشه کارش بگیر دیگه از اون مدت میگه تجاوزش نمیکنه. کنه ولا یمنع يمنع المعیر ان يرجع قبلها و ممنونیست معیر آریه دهنده که بر بگردد قبل از اون یعنی آریهش رو قبل از اون چه کار بکنه؟ ولی یک نقطه قشنگی در پاورقی آورده اینو برات بخونم میگه امام شافع شافعی گفتن آریه بر دو نوعه خب تو خود همین متن هم بر دو نوعه جلوتر که بریم اطلقتو آورده از لفت اطلقت مشخص میشه که ما آریه مطلق داریم و قدرت به مدت از اون فهمیده میشه که موقعت داریم پس آریه بر دونایم مطلق و موقعت شافعیه گفتن آریه بر دونا هست مطلق و موقعت و گاهی موقع آریه لازمی میشه جایزی نیست از نوع جایزی نیست که شما هر وقت بر بگردی بلکه لازمیه چه موقع؟ میگه مانند این که شخص بیاد یک کشتی رو آریه بگیره تا کالایش رو نقل بکنه مویر حق نداره که در وسط در یا بیاد چکار بکنه اونو باز بگردونه در حالی که اون کالاها هنوز در کشتی هستن اما قبل از این که حرکت کرده بود میتونست برش بگردونه خب طبق مذهب میگه اگر طلبش کرد صاحبش در وسط دریا اینجا بر مستئیر هست اجره مثل از همون لحظه که طلبش کرده تا زمانی که به صاحب برسه یعنی اجره مثلشو موزدشو بده اجارهشو پس ولا یمنع المعیر ان یرجع قبلها میگه ممنون نمیشه معیر که قبل از اون برش بگردنش داده شما رو کلنگی که بری چاه تا بزنی خب میتونه بیاد این کلنگ کار چکار کنه بر بگردونه. و این اطلقت ردت اذا طولی اگر مطلق بود از نوع مطلق بود آریه باز گردنده میشه هر وقت که طلب شد و مؤنت ردها على المستغیر و هزینه بازگرداندنش بر مستعیر مستعیر اون خودش میار میرسونه و این احتاجت الى علف فعل المعیر اگر نیازه به علف داشت پس برکی هست بر معیره اون موقع چار پا بودن ولی الان ماشینه حالا اگر اینو به روز رسانی کنیم فقه آیا بنزینش بر معیر یا مستعیر این بستگی داره به دو طرف اصلا نمیشه لازش شرعی بر یکی واجبش کرد یعنی نمیشه بر موئیر واجبش کرد بنزین مثلا ماشینو شما میری کارتو انجام بدی چرا؟ چون خود اون ذات ماشین دادن آریه است این خرج شده که خودت چیکار میکنی؟ حالا بله اگر وسط مثلا اومد پنچر شد این هزینهش بر شما نمیشه البته طبقه مذهب امام ابو هنیفه و امام مالک ولی طبق مذهب امام شافعی پنچر شد، شما پنچری شو, شو بگیرد چون قبلا اومده بود و مزمونتون این تلفات زامن هز اگر تلف شد درست خود اصلش تلف نشده ولی خرج برش؟ هست، طبق اون قیاس، طبق قیاس دارم بگم طبق چی؟ قیاس از قاعده کل خب، وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَا بَقَئِهِ جَازَ انْ يُعَارَّ اِذَا كَانَتْ مَنَافِعُهُ آثَارًا و هرانچه که ممکن است انتفا بردن از اون با باقیماندن اصلش جائز است مثل نمیشه که آدم سرو آریه اصلش از بین میره ولی میشه یه چیزی رو که اصلش مثل طلمبه قولون به باد شوشو استفاده میکنی اصلش از بین میگه زمانی که ممکن بود انتفاع از اون همراه با باقی موندنش جایز است که اریه داده بشه زمانی که نفع اون اریه آثار باشه ولا يجوز اعارته ما كانت منافعه اعیانا اما جایز نیست اریه دادن یا عقد اریه زمانی که منفعت اون خودش عین باشه چی باشه مانند ثمره و نتاج و اون تولیدش الا ذوات الدر من المواشي مگر مواشی که شیر میداد بسان دارند یا جوز و حل الحلب جایزه که ماشیه رودات برای شیر ها خمسای شما گوسال نداره شما داری آقا این دو تا رو بردار تا موقعی که اینجا هستیم شیرشون رو کن استفاده بکن خودکار مثلا رو میشه از این خودکار شما موقعی که میدی خب اصلش مصرف میشه ولی چه قیاسش گرفت از این ماشیه از این چی و آریهش گرفت. چی کارش کرد؟ خب همان طور که در مثلا ماشین شما موقع کارش میگیری قطعا یک از اصلش چیزای مصرفی میشه مثلا لاستیکش مصرف میشه روغنش در کشتی در چیزای دیگه هم اینجوری هست. بله. منظور اینه که اصلش کامل از بین نمیره. اینه که هیچ چیزی سرش نمیاد. وهی المنحه المردوده التي وردت جائزه في السنه میگین اخرین مواشی مون منحی هست که باز گردوندن میشه که جائز بودنش در سنت وارد شده است و یک بله بس این شده از کتابه اریه یک مسئله دیگی که هم مونده بود در پاورقی شوافق بگفتند که آریه دادنان چه که شخص آریه گرفته جایز نیست ولی مالکیه و حنفیه گفتند جائزه برای مؤیر ان یعیر ما, ما استعاره که آریه بدهان چرا که آریه گرفته است ها؟ شوافه گفتن ليس له و مستعاره حق نداره آریه بده رو کاریه گرفته ها مالکیه و احناف گفتن جایز است که ااریش بده ها هم هست کجا چیا ليس لوارد سر وقت مال من نیست چطور چطور شد خب خوش کتاب چاپ مشکل چاپی مال تره تا هم دکتیم کامل ایبوتیم